به نام خدا با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز داستان دختر پادشاه و مرد درویش این افسانه با پیامی که دارد میخواهد بگوید که هر کسی تقدیری دارد و سرنوشت هر کس از پیش برای او تعیین شده است درون اون مایه آن چونین است تقدیر را تدبیر نیست این افسانه را از کتاب چاپ نشده فرهنگ مردم استحبان، گردآوری و تعلیف آقای محمد رضا آل ابراهیم آورده ایم. شما را به شنیدن آن دعوت می کنم روزی بود و روزگاری بود یه پادشاهی بود که فقط یک دختر چهارده ساله داشت یه روزی از روزا درویشی برای شعر گفتن و مدیح سرایی به قصر پادشاه اومد و دخترش دید و یک دل نصد دل عاشق دختر شد. درویش به پادشاه گفت منو به نوکری قبول دارید؟ پادشاه گفت یعنی چی؟ درویش گفت یعنی دخترتونو به من میدید تا همسرم بشه؟ پادشاه عصبانی شد و گفت تا سر تو از تنت جدا نکردم از مقابل چشمم دور شو درویش از غصب بیرون اومد و نفرین کرد تا دختر پادشاه بمیره دختر پادشاه مرد و اونو به خاک سپردم شب که شد درویش بیل و کلنگی برداشت و به قبرستون رفت و دختر دخترو از قبل بیرون آورد بعد اونو به حمام زنانه برد به دست زن استاد حمامی سپرد و گفت این زن من از هوش رفته یه آب گرم و یه آب سردی روش بریزین شاید خدا بخواد به هوش بیاد زن حمومی تا آب سرد و گرم رو به روی دختر ریخت دختر عطسه ای کرد و زنده شد درویش لباس زنونه خرید و به زن استاد حمومی داد تا به تن دختر بپوشونه. بعد درویش دختر پادشاه رو عقد کرد و شد همسرش و اون رو به خونش برد. چند سالی گذشت و آنها صاحب یک پسر و یک دختر شدند. یه روزی اومد و یه روزی رفت تا اینکه که زن درویش به همون هموم رفت از غذای روزگار زن پادشاه هم به همون هموم اومده بود تا چشم زن پادشاه به دختر افتاد جیغی کشید و بیهوش بر زمین افتاد بعد از اون که به هوش اومد گفت من دختری داشتم که مثل تو بود این سیبی که با کارد از وسط نصف کرده باشند باید همراه من به قصر بیای، که شاه از قصه مرگ دخترش داره میمیره. دختر گفت من باید از شوهرم اجازه بگیرم. زن پادشاه گفت محاله که بذارم بری. زن پادشاه دستور داد دختر رو به قصر پادشاه بردن. تا چشم سلطان به دختر افتاد قشت کرد و حالش بد شد. بعد از اینکه قدری بهتر شد به صورت دختر نگاه کرد و خالی رو که خودش رو صورتش داشت رو در صورت دختر دید. تا اون خال رو دید یقین کرد که این دختر دختر خودشه. شاه به معموراش دستور داد تا شوهر دختر رو بیارم. شوهر لباس درویشیشو بیرون آورد و لباس مرتبی پوشید و به نزد شاه رفت. شاه درویشو نشناخت بهش گفت زن تو با دختر من مونه میزنه اما حیف که دختر من مرده در عین حال من اونو به جای دخترم قبولش دارم تو هم داماد من بچه ها هم بیاری تو همین قصر پیش من بمونید. درویش گفت حالا که کار به اینجا کشیده سرگذشتم و براتون میگم یه شبی تو قبرستون داشتم رد میشدم که از یکی از قبرها صدایی به گوشم رسید قبرو شکافتم و این دختر که الان زن منه ازش بیرون اومد اونو عقد کردم و شد همسر من من نمیدونستم که دختر شماست پادشاه دستور داد تا شهر رو آینه بندی و چراغون کنند بعد تاج پادشاهی رو از سر خودش برداشت و بر سر درویش گذاشت و گفت تو لایق پادشاهی هستی و پس از این تو سلطان مملکتی خدا کنه همونطوری که اونها به مراد و مطلبشون رسیدن شما هم برسید دختر پادشاه و مرد درویش فرهنگ مردم استحبان تعلیف و گردآوری محمد رزا آل ابراهیم راوی حجت سختی دانش آموز، کتاب چاپ نشده است شنوندگان عزیزم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 ادساین مهران دوستی